دوستان خوبم به کلاس دیگری از دانشکتی کتاب مقدس خوش اومدین. جایی که ما کتاب مقدس رو تماماً مطالعه می ضمن زمن بررسی های قدیم ما به مطالعه کتاب کوچک میکام می رسیم. اگرچه همه این انبیا در زمانهای خیلی دور زندگی می‌کردند، اونها پیغام های خیلی مهمی از طرف خدا برای ما داشتن. بیاید با معلممون همراه بشیم. و درس امروز رو به دقت گوش کنیم ای جمعی قوم ها بشنوید و ای زمین و هر آنچه در آن است گوش بدهید خداوند یهوه یعنی خداوند از هیکل قدسش بر شما شاهد باشد زیرا اینک خداوند از مکان خود بیرون میآید و نزول نموده بر مکانهای بلند زمین کوه کوه‌ها زیر او گداخته می شود و وادی ها منشق میگردد مثل موم پیش آتش و مثل آب که به نشیب ریخته شود این همه به سبب اسیان یعقوب و گناه خاندان اسرائیل است اسیان یعقوب چیست آیا سامره نیست و مکان بلند یهودا چیست آیا اورشلیم نمیباشد پس سامره را به توده سنگ صحرا و مکان قرس نمودن موها مبدل خواهم ساخت و سنگ را به در ریخته بنیادش را منکشف خواهم نمود به این سبب ماتم گرفته ولوله خواهم نمود و برهنه و اریان راه خواهم رفت و مثل شغال ها ماتم خواهم گرفت و مانند شتر مرغ ها نوه گری خواهم نمود به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش آمدید ما بررسی انبیاء عهد قدیم را شروع کردیم آیاتی که براتون خوندم به ما نشون میده که میکا نبی موعظه رو چطور شروع میکنه؟ همونطور که قبلا دیدیم، تمامی این انبیا انبیا بزرگی بودن. میکا یکی از بزرگترین واعظین در بین این انبیا هست. هر کدام از این انبیا شیوه خاص خودش رو برای موعظه داره. جالب خواهد بود اگر هر کدام از این انبیا رو بشناسیم و با نحوه های اونها آشنا بشیم. کتاب میکا با دادن اطلاعاتی تاریخی شروع میشه. می‌دونیم که میکا در دوره حکومت یوتام آهاز و هزقیا معزه و خدمت می کرده. چندین نبی در دوره حکومت اوضیا خدمت می قبلا خوندیم که اوزیا و پسرش در هفت سال آخر در کار حکومت با همدیگر دیگر مشارکت می کردن چون که مبتلا به برس بود هزقیا پادشاه خوبی بود یوتام هم انصافاً پادشاه خوبی بود اما آهاز پادشاه بی نهایت شریری بود این تاریخ به ما نشون می که میکا یکصد سال قبل از واقعه اسارت بابل زندگی می کرده. همینطور می متوجه بشیم که واقعه به اصارت رفتن اسرائیلی ها به آشور در زمان میکا اتفاق افتاده و میکا معاصر با اشعیا و هوشه بوده. به خاطر شرارت آهاز پادشاه، فساد وحشتناک روحانی، اخلاقی و اجتماعی در رهبران قوم دوره میکا وجود داشته. موعظه میکا خطاب به رهبری قوم هست. میکا هم همصدا با حزقیال و ارمیا و دیگر رهبران روحانی و اجتماعی قوم خدا را به خاطر فساد اونها سرزنش میکنه. میکا و آموس شخصیت های مشابهی داشتند. آموس انجیرچین و چوپان بود. میکا یک بچه روستایی بود. میکا با وجودی که روستایی بود در پایتخت های پادشاهی شمال و جنوب می کرد. قبلا هم اشاره کردم که همه انبیا به استثنای هوشه و آموز در پادشاهی جنوب یهودا خدمت می کردند. فقط هوشوا و آموز برای پادشاهی شمال خدمت کردند. یک بار دیگه میخوام این واقعیت تأکید کنم که ده تایفه در شمال بودند و دو تایفه در جنوب. ده تایفه شمالی اسرائیل نامیده می شدند، ده تایفه شمالی اسرائیل نامیده می شدن و دو تایفه بنیامین و یهودا در جنوب یهودا خانده می شدن. تمامی انبیا به جز و آموز به استثنای میکا در پادشاهی جنوب خدمت می میکا در هر دو پادشاهی موعظه می کرد. میکا از طرف خدا دعوت شد که به سامره پایتخت پادشاهی شمال و به اورشلیم پایتخت پادشاهی جنوب بره. در اینجا بود که میکا موعظه باشکوهش رو انجام داد. وقتی تاریخ کتاب مقدس و تاریخ کلیسا رو میخونید جالبه که الگوی کار خدا رو ملاحظه کنید. راههایی که خدا بهشون علاقمنده. چون راه های خدا راه های انسان نیست. در خلال زمانی که بهش بیداری بزرگ میگیم، خدا برادران وسلی و جورج ویتفیلد رو که تحصیل کرده با فارغ تحصیل آکسفورد بودن با قوت به کار گرفت تا بیداری روحانی رو به وجود بیاره که تاریخ انگلستان رو عوض کنه. این مردان تحصیل کرده به مردان آمی در مزاره موعظه میکردند و این افراد با شادمانی به اونها گوش میکردند. تقریبا یکصد سال بعد خدا مرد بی سواد پینه دوزی به نام دوایت المودی رو با قوت محض کرد. خدمت دوایت المودی مردم امریکا را به شدت تحت تأثیر قرار داد و هزاران نفر را به سوی خدا آورد. اگرچه گرامر زبان مودی وحشتناک بود. وقتی به حرفای او گوش می‌کردید فکر می‌کردید که او همین الان از استبل بیرون اومده. اما وقتی پنج دقیقه به حرفای او گوش می‌کردید دیگه به گرامر او توجه نمی کردید. چنان به نظر می رسید که صدای دیگه ای وارد عمل شده که همون عمل مس روح القدس بر مودی بود. او خدمت هیجان انگیزی داشت. مودی که سوادی نداشت برای دانشجویان آکسفورد و کمبریج می کرد که در سالهای آخر خودشون بودند و به مردی گوش میکردند که هیچ سوادی نداشت. اگه شما مسئول بودید آیا فکر نمی کنید که وستلی رو به آکسفورد و کمبریج میفرستادید و مودی رو برای به مزاره میفرستادید من که شخصا این کارو میکردم اما خدا این کار رو نکرد پولس رسول تنها رسولی بود که تعلیمات الهیاتی دیده بود پولس یک عالم دینی بود پولس فریسی ترین فریسی ها بود او کنار پاهای گالامایل می نشست بدین معنی که بهترین تعالیم را که یه نفر میتونست در اون دوره بگیره گرفته بود آیا خدا پولس رو نزد علمای یهودی فرستاد نه خدا او رو نزد غیر یهودیان فرستاد او رو نزد افراد مشرک فرستاد کسانی که هیچ پس زمینه الهیاتی نداشتند و خدا چه کسی رو نزد عالمان ربانی فرستاد مردان عامی ماهیگیری مثل پتروس و برادرش آندریاس رو که حتی خواندن و نوشتن بلد نبودند همکاران شغلی پتروس یعقوب و یوحنا که خواندن و نوشتن بلد نبودند خدا اونها رو به شورای سنهدرین فرستاد اعضای سنهدرین از توازن شجاعت و حکمت این مردان حیرت کرده بودند چون که مشخص بود اونها مردان بیسوادی بودن. بودند اما میخونیم که اعضای سنهدرین از اونها درس می چون اونها با عیسی بودند چیزی در وجود این مردان عامی بود که آلمان یهودی نمیتونستند اون رو وصف کنن. مودی خدمت مسمر سمری در این کشور داشت وقتی که مودی هدایت خداوند رو احساس کرد که جنگ های صلیبی رو در انگلستان متوقف کنه منتقدین او پیشگویی کردند او در لندن شکست خواهد خورد اونها می او شاید تونسته مردم رو در کشور ذرت یا ایالات متحده مجاب کنه اما هرگز در انگلستان کسی به او گوش نخواهد داد مودی نوازنده ای داشت به نام سنک تمامی مبشرین بزرگ برای خودشون نوازنده ای دارن مودی بلند می و از کتاب مقدس میخوند و بعد می نشست. بعد سنک ای می خوند. بعد از اون مودی بلند می و معزه می کرد. این عادت اونها بود. اولین شبی که مودی در انگلستان بود، او داستان پسر گم شده از لغا 15 رو خوند و نشست. بعد سنگ ای پشت پیانو نشست و با خونسردی شروع به خواندن 99 گوسفند کرد. تا حالا اون رو شنیدید؟ سنگ ای شروع کرد به خوندن شبانی که 99 گوسفند داشت اما یکی گم شده بود. سنگ ای این سرود رو فلبدאה خوند. می خونیم که روح خدا بر اون محل قرار گرفت و بعد از اون مودی بلند شد و پسر گم رو کرد. روح القدس اون شب صدها نفر رو تبدیل کرد از مودی دعوت شد که در سرتاسر سر انگلستان معزه کنه از او دعوت شد که برای دانشجویان دانشگاه‌های کمبریج و آکسفورد صحبت کنه وقتی تاریخ کتاب مقدس و کلیسا رو می‌خونم شیفته راه‌های خدا میشم من خیلی دوست دارم که میبینم خدا میکا این پسرک روستایی رو دعوت کرده و به او مأموریت داده که به پایتخت پادشاهی‌های شمال و جنوب بره و موعظه کنه به بعضی از موعظه های این پسر روستایی نگاه کنید این نبی بزرگ خدا در شهرهای بزرگ موعظه می کرد کتاب میکا هفت باب داره وقتی کتاب میکا رو می خونید می فهمید که کتاب میکا اساساً از سه موعظه بزرگ این نبی تشکیل شده و عظمت موعظه های میکا رو تحسین خواهید کرد اگرچه میکا این موعظه ها رو در پایتخت پادشاهی های شمال و جنوب انجام داده با این حال اولین موعظه او خطاب به تمامی مردم روی زمین است از اونجایی که موعظه میکا خطاب به هر کسی در روی زمین هست، به این خاطر من در اول این جلسه اون موعظه رو براتون خوندم. در موعظه اول میکا خطاب به تمامی مردم، میکا از این واقعیت به هیجان اومده که خدا سامره رو که پایتخت پادشاهی شمال هست، تنبیه خواهد کرد و اورشلیم، پایتخت پادشاهی جنوب رو هم تنبیه خواهد کرد. وقتی معزه میکا رو در زبان خودمون میخونیم نمیتونیم اونطور که باید حق مطلب بعضی چیزها رو مانند زبان اصلی ادا کنیم اگر بتونید این معزه رو به زبان عبری بخونید خواهید فهمید که میکا واعز بسیار بسیار سخنور و ماهری بوده مثلا وقتی به قلب معزه خودش خطاب به تمام مردم میرسه او اینطور میگه این را به شهر جت نگویید و مگذارید اهالی آنجا گریه شما را بشنود ای از شدت درد و شرمندگی در خاک بغلتید مردم شافیر اوریان و صرف‌گنده به اسارت برده میشوند. اهالی سانان جرأت نمیکنند از خانه هایشان بیرون بیایند وقتی صدای ماتم مردم بیتیسل را بشنوید بدانید که در آنجا پناهگاهی نیست ساکنان ماروت جهت در انتظار روزهای بهتری هستند چون خداوند به ضد اورشلیم برخواسته و تلخی و مرارت در انتظار ایشان است ای مردم لاکیش بشه تابید بر سریع ترین های خود سوار شده فرار کنید چون شما اولین شهر یهودا بودید که گناه بدپرستی اسرائیل را دنبال کردید و برای سایر شهرها سرمشق شدید ای مردم یهودا با شهر مورشت جد خداحافظی کنید زیرا امیدی برای نجات آن نیست شهر اکزیب پادشاهان اسرائیل را فریفته است اگه بتونیم این معذر را در زبان اصلی عبری بخونیم کلمه ای رو خواهید دید که از آیات ده تا چهارده تکرار شده. میکا کلمات دو پهلوی کوچکی رو به کار میبره. کلمه‌ی شافیر در زبان عبری مثل کلمه‌ی زیبایی میمونه. و اینجا اون زیبایی متضاد با شرم اونها هست. سانان در زبان عبری مثل فعلی هست که معنیش جلو رفتن هست. میکا این مفهوم رو با ترس مقایسه میکنه. ترسی که حتی مانع بیرون رفتن ساکنان میشه. بیتیسل در زبان ابری مثل کلمه ای به معنی زیر ساخت هست که از اونها گرفته خواهد شد. چیزی که میکا معظه میکنه تقریبا یک چنین چیزی هست. ای شهر عشق بریز در خاکستر قتل بزن ای شهر لخت و اوریان جلو برو جرعت نداری زیرا اصالتت از تو گرفته شده. با تمثیل پیشرفتن بدون لباس و اوریان میکا برای نشون دادن منظورش لخت میشه همونطور که قبلا اشاره کردم این انبیا هایی رو می آوردن که منظورشون رو به طور واضح بیان کنه من یقین دارم که میکا وقتی اولین موعظهش رو کرد تأثیر بسیار عمیقی به جا گذاشت مایلم که اولین موعظه میکا رو که خطاب به تمام مردم دنیا بود خلاصه کنم میکا می کرد که قصد خدا این بود که توسط قومش جلال پیدا کنه توسط قومش خدا می‌خواست نشون بده که او چه جور خدایی هست چرا در وهله اول خدا انسان رو خلق کرد جواب این نیست که خدا انسان رو برای دوستی خلق کرد. خدا انسان رو خلق نکرد چون تنها بود و احتیاج به دوست داشت. بنابه گفته کتاب مقدس، خدا انسان رو خلق کرد که بازتاب به سیمای خدا برای تمامی مخلوقات باشه. به این دلیل خدا انسان رو خلق کرد. وقتی خدا به قوم یهود معموریت داد که قوم او بشوند، منظور خدا همین بود. قصد خدا این بود که قوم یهود به تمامی دنیا نشون بدن که خدا چه جور خدایی هست؟ در دوره میکا مردم در فساد روحانی و اخلاقی بودند. اونها سیما و خصوصیات خدا را به دنیا نشون نمی دادن. بنابراین پیغام میکا به تمامی مردم که اولین معزه از سمعزه او هست، اساسا این بود. اراده قطی خدا این بوده و هست که خدا میخواد قوم او بازتاب سیما و خصوصیات او باشن. اگرچه قوم او اون چیزی که خدا اونها رو تدراهی کرد نیستند، با این حال خدا هنوز میخواد که اهدافش رو توسط اونها عملی کنه خدا میخواد خودش رو از طریق اونها به دنیا آشکار کنه میکا این اینطور معزه کرد خدا شما رو در برابر تمام دنیا تنبیه خواهد کرد وقتی خدا شما رو تنبیه میکنه تمام دنیا رو دعوت میکنه که شما رو تنبیه کنن. وقتی خدا شما رو در مقابل تمام دنیا تنبیه میکنه خدا بازتاب از سیما و تصویر خودش رو به دنیا نشون میده وقتی من بچه بودم و به دبستان می رفتم، معلمین دانش آموزان رو در برابر دیگران شلاق می زدن. احتمالاً بعضی از شماها اون روزها رو به یاد میارید. معلم شما رو به جلو کلاس می برد و حقیقتاً چوب تنبیه می کرد. این خراب کردن دانش آموز خاطی بود و ترس در دل بقیه بچه هامین من فکر می کنم فلسفه پشت تنبیه عمومی این باشه. مردم سالها قبل در ملای عام دار زده می شدند که تأثیر عمیقی داشت، و شهروندان رو میترسوند که از قانون تاعت کنند. این روشی بود که وقتی من دبستان میرفتم اعمال میشه. من فکر می کنم چیزی که میکا در این معزه میگه اساسا همینه به گفته میکا خدا آشور رو بر پادشاهی شمال مسلط خواهد کرد و آشوریان چوبهای های تنبیه خدا برای مردم پادشاهی شمال یا اسرائیل خواهند بود. از تمامی دنیا دعوت شده بود که شاهد این تنبیه باشند و بعد از اون، تمامی دنیا میتونستن اراده خدا رو برای قوم خودش آشکارا ببینن. تمام دنیا خواهند فهمید که خدا طبیعتا رفتارهای درست از قومش انتظار داره. تمامی دنیا پیغام رو خواهند گرفت چون خواهند دید که خدا پادشاهی شمال رو به زانو در میاره و از آشوریان برای تنبیه اونها استفاده میکنه. اون وقت تمامی دنیا خواهند فهمید که خدا قصد داره قومش چگونه باشد. میکا همینطور وقتی موعظه میکنه که بابلیها ها خواهند آمد این پیغام رو به پادشاهی جنوب هم تعمیم میده میکا یکصد سال پیش از به وجود آمدن امپراتوری بابل همصدا با اشعیا این واقعه اصارت بابل رو پیشگویی میکنه او این واقعه رو و پنجاه سال قبل از وقوعش پیشگویی میکنه میکانه بووت میکنه که خدا پادشاهی جنوب رو به زانو در خواهد آورد او از بابلی ها برای تنبیه اونها استفاده خواهد کرد و از تمام دنیا دعوت میکنه که شاهد اون باشد. میکا در اولین معزش به این نکته اشاره میکنه. هدف خدا برای زندگی این قوم برگزیده این بود که اونها شخصیت خدا سیما و تصویر خدا رو به تمام دنیا نشون بدن. اونها یقینا این کار رو نکردن و زندگی خدا ترسانه و مقدسی نداشتند. پس خدا توسط میکا گفت شما هنوز هم به دنیا نشان خواهید داد که من کی هستم. چون من شما رو تنبیه خواهم کرد، و از تمام دنیا در این تنبیه دعوت خواهم کرد. این خلاصه ای از اصل اولین معزه میکا بود. معزه اول میکا به ما نشون میده که او چه واعز سخنوری بوده. درست مثل دیگر انبیا میکا معزه اش رو با لحنی مثبت به پایان میبره و بازگشت از اصارت بابل و نجات نهایی هر دو پادشاهی شمال و جنوب رو معزه میکنه. و البته میکا نجات نهایی رو معزه میکنه که در زمانهای آخر صورت خواهد گرفت. وقتی که هر دو پادشاهی شمال و جنوب از اصارتهایشان آزاد بشن. دومین معزه میکا که در باب سه آیه یک شروع میشه تا باب پنج آیه پونزده ادامه پیدا میکنه. معزه دوم میکا هم معزه باشکوهی هست. اگر این معزه رو درک کنیم، اون به ما کمک میکنه که تا حدی علم سیاسی رو درک کنیم چون دومین معزه میکا خطاب به حکومت هست. میکا بسیار نگران حکومت بود. و میکا خطاب به حکومت و یا رهبران سیاسی قوم اسرائیل مثل فرمانداران و یا شهرداران بود. میکا همینطور خطاب به رهبران روحانی یا کاهنین و انبیا موعظه میکنه. از دیدگاه میکا سه نوع رهبر در حکومت قوم خدا وجود داشتند. اول رهبران روحانی یا کاهنین بودند. وظیفه اصلی کاهنین این بود که حقایق روحانی رو که خدا میخواست قومش بدونن برای قوم خدا نشون بدن و بازگو کنند. کاهنین معلم هم بودند مقرر بود که کاهنین چیزهای روحانی رو به مردم تعلیم بدن و البته به سوالات اونها پاسخ بدن مقرر بود که کاهنین چیزهای روحانی رو به مردم تعلیم بدن و البته به سوالات اونها پاسخ بدن و خودشون نمونه چیزی باشند که تعلیم میدن نقش کاهنین این بود که رهبران اخلاقی قوم باشند نقش انبیا این بود که کاهنین رو تشویق کنند که کلام خدا رو به مردم تعلیم بدن و به مردم نصیحت کنند که از کلام خدا اطاعت کنند این مخصوصا زمانی تحقق پیدا میکرد که کاهنین فاسد میشدند و مردم رفتارهای غیر اخلاقی داشتند بنابراین میکا انبیا رو مسئول انحطاط تخلاقی قوم میدونه سومین نوع رهبران در حکومت های تعیین شده از طرف خدا بنا گفته میکا رهبران اجتماعی بودند که مسئولیت اونها این بود که قوانین خدا رو که توسط کاهنین و انبیا موعظه میشد اعمال کنند ما این موینو رهبران اجتماعی رو هنوز هم در فرهنگ های امروزی داریم. شبان قانون خدا رو معیزه میکنه در حالی که مجریان قانون که با یونیفرم مشخص میشن کسانی هستند که توسط خدا تعیین میشن تا قوانین خدا رو که توسط شبانان موعظه میشه اعمال کنند. در باب 13 کتاب رومیان پولس رسول به ما میگه که این مجریان قانون کسانی که یونیفرم میپوشن همونقدر خادم خدا هستند که شبانان در پشت سکوی خطابه خدا رو خدمت میکنن. سه بار پولوس به ما میگه که مجریان قانون خادمین خدا هستند. از ما خواسته شده که از مجریان قانون اطاعت کنیم چون اونها شمشیر رو بدون هدف حمله نمیکنند. اگر شما قانون رو بشکنید و او از شمشیرش که امروزه به جای اون هفتیرهای های کالیبر نه اتوماتیک به کار میره بر علیه شما استفاده کنه در ای که اون ماشر رو میکشه خدا رو خدمت میکنه. کتاب مقدس بسیار به حکومت اهمیت میده و به ما میگه که حکومت از جانب خداست و از طرف خدا تعیین شده. میکا سه ست در حکومت نشون میده. یکی رهبران روحانی هستند، کاهنین که قرار به عنوان نمونه‌های روحانی زندگی کنند و خدا میخواد که اونها شفیعان قوم نزد خدا باشند، انبیا که موعظه می کنند و مردم رو نصیحت می کنند که از تعالیم کاهنی اطاعت کنند. و بعد رهبران اجتماعی که وظیفهشون اعمال قوانین خداست که توسط کاهنین و انبیا اعلام میشه ای رهبران بنی اسرائیل گوش کنید شما کسانی هستید که باید مفهوم ادالت را بدانید ولی در عوض از خوبی متنفرید و بدی را دوست می‌دارید شما پوست قوم مرا می‌کنید و گوشتی بر بدنشان باقی نمی‌گذارید آنها را بلید پوست از تنشان جدا می‌کنید و استخانهایشان را مانند گوشتی که تکه تکه کرده در یک دیگ میریزن خورد میکنید. پس زمانی که از خداوند کمک به تلبید او به دعای شما پاسخ نخواهد داد. او روی خود را از شما برخواهد گردان زیرا مرتکب کارهای زشت شده اید. خداوند میفرماید ای انبیاء دروغگو که قوم مرا گمراه کرده برای کسی که به شما موزد میدهد با صدای بلند سلامتی میطلبید و کسی را که موز نمی تهدید می‌نمایید. تاریکی شب شما را فرو خواهد گرفت تا دیگر رویا نبینید و پیشگویی نکنید. آفتاب بر شما غروب خواهد کرد و روزتان تاریک خواهد شد. صورتهای خود را از خجالت خواهید پوشان زیرا دیگر از جانب خدا جوابی برای شما نخواهد آمد. و اما من از قدرت روح خداوند پر شدم تا بدون ترس گناهان قوم اسرائیل را به آنها اعلام کنم. پس ای رهبران اسرائیل که از ادالت نفرت دارید و بی انصافی می کنید به من گوش دهید. ای کسانی که اورشلیم را از خون و ظلم پر ساخته اید. ای رهبران رشوهخار ای کاهنان انبیایی که تا به شما مزد ندهند موعزه نمی کنید و نبوت نمی نمایید. ولی در عین حال وانمود می کنید که به خدا توکل دارید و می خداوند در میان ماست. حس هیچ گونه آسیبی به ما نخواهد رسید به خاطر شما اورشلیم با خاک یکسان شده به صورت توده های سنگ در خواهد آمد و کوهی که خانه خداوند بر آن قرار دارد به جنگل تبدیل خواهد شد وقتی سومین موعظه میکار رو میخونید کاملا مشخص هست که میکار رهبران اجتماعی رو توبیخ میکنه شاهزادگان و فرماندهان رو توبیخ میکنه چون اونها رشوه میگیرن اونها رشوه خار هستند همونطور که در بسیاری از حکومتای امروزی رایجه وقتی به فیلیپین سفر می‌کردم ساکم رو گم کردم پاسپورتم در ساکم بود وقتی در هین سفر پاسپورتتون رو گم کنید به دردسر می‌افتید خادمینی که به ملاقاتشون می‌رفتم گفتند اگر خیلی شانس بیارم می‌تونم پاسپورتم رو پیدا کنم اونها گفتند اگه پاسپورتم رو پیدا کنم خیلی خوش شانس هستم چون کاملا مشخص بود که اگر پلیس ساک رو پیدا کنه شما نخواهید تونست پولی که در اون, اون پس بگیرید نمیتونید ضبط صوت و هیچ کدوم از چیزهاتون رو پس بگیرید. چیزی که درون ساک شما هست، مجدگانی اونها بابت پیدا کردن کیف هست. روش زندگی در اینجا اینطوریه، توقع نداشته باش چیزی به جز پاسپورتت پیدا کنی. تازه اگه پاسپورتت رو پیدا کنی خیلی خوش شانس هستی. در بسیاری از نقاط دنیا رهبران اجتماعی فاسد هستند و رشوه میگیرند. می کار رهبران اجتماعی رو متهم به چنین فسادی میکنه. بنو میکا اونها در مقابل پاداش داوری میکنند. اونها پول زیرمیزی میگیرن. بعد میکا رهبران روحانی یا کاهنین رو توبیخ میکنه چون اونها در مقابل مزد می میکنند. به عبارت دیگه اونها از طرف خدا برای کهانت خوانده نشدند. اونها کاهنین حرفه‌ای هستن. میکا به اونها گوش زد میکنه که قرار نیست کهانت یک حرفه باشه. کاهن بودن یک دعوته. کاهن کاهن به دنیا میاد چون که باید از نسل لاوی و هارون باشه. اگرچه در عبرانیان باب پنج میخونیم که هر کاهنی باید از طرف خدا دعوت داشته باشه یک بار از خادمی که شبان یک کلیسای بزرگ بود شنیدم که میگفت شما نمیتونید سالانه 500 هزار دلار به من بپردازید که شبان این کلیسا باشم اما چون خدا منو دعوت کرده من اون رو به رایگان انجام میدم ما باید توقع داشته باشیم که مردانی که خواندگی برای خدمت دارند، چنین احساسی داشته باشن چطور میتونید فشارها و زحماتی که خادم یک کلیسای بزرگ میکشه جبران کنید؟ چنین چیزی امکان نداره اگر خادم یک مرد خداست او به جبران کردن کارهایی که انجام میده فکر نمیکنه چون برای انجام همه این چیزها دعوت شده اعضای کلیسا نیازهای او رو برآورده میکنند تا او بتونه آزادانه دعوتش رو به انجام برسونه خادمی که فرا خوانده شده به کسب منفعت فکر نمیکنه او خودش رو با اشخاص دیگه در سایر حرفه‌ها مقایسه نمی‌کنه و به کاری که اونها در برابر خدمتش انجام میدن فکر نمی‌کنه. وقتی که یک کاهن مرتطب میشه در مقابل اجرت تعلیم میده و حرفه‌ای میشه. درست مثل دیگر مردان حرفه‌ای، میکا به خاطر سکولاریزه شدن کهانت بسیار ناراحت هست. بعد میکا رهبران اخلاقی یا انبیا رو توبیخ میکنه. چون اونها در مقابل پول پیشگویی میکنن با این کلمات اتهام میکا متوجه انبیا میشه وقتی میکا عنوان کرد که رهبران اجتماعی به خاطر پاداش داوری میکنن منظورش این بود که اونها پول زیر می گیرن و با قرض داوری میکنن میکا اونها رو متهم میکنه که از شغل و اقتدارشون سوء استفاده میکنن وقتی میکا ادعا میکنه که رهبران روحانی به خاطر دستمز تعلیم میدن منظورش این بود که اونها كهانت رو به هرفهی دنیایی تبدیل کرده یا همون کاری رو انجام میدن که از اونها انتظار میره انجام بدن اما با نیتی غلط این کار رو انجام میدن به هر حال وقتی به انبیا میرسه شدیدن به اونها حمله میکنه میکا ادعا نمیکنه که انبیا به خاطر پول معوزه میکنن یا به خاطر پول نبوت میکنن او میگه اونها به خاطر پول غیب گویی میکنن او انبیا رو متهم به جادوگری میکنه میکا انبیا رو متهم به ساهری و جادوگری میکنه کسانی که جادوی سیاه رو به کار میبرند، ارمیا هم انبیار رو به همون چیز متهم کرده ارمیا اینطور معیزه کرد من به ضد این پیاماوران دروغین هستم که با خوابهای ساختگی و دروغهای خود قوم مرا به گمراهی میکشانن من هرگز چنین افرادی را نفرستادم و معمور نکردم برای همین هیچ نفعی از آنها به این قوم نخواهد رسید میکا و ارمیا از این که تعدادی از این انبیا رویاها و خوابهای شخصی خودشون رو موعظه میکنند، ناراحت هستند و هر دو بر علیه این انبیای دروغین موعظه میکنند. قوم خدا رو در جایگاه های پرستش مانند گوسفندانی به تصویر میکشند که به بالا نگاه میکنند و در انتظار تغذیه با کلام خدا هستند، اما تغذیه نمیشه. غمانگیز اینجاست که اونها در سفره پدر نشستهاند در خانه خدا هستند. و حق دارند که توقع داشته باشند از کلام خدا بشنوند. دغدغه میکا این بود چون که کاهنین برای دستموز تعلیم میدادند و انبیا به خاطر پول غیب گویی میکردند، قوم خدا کلام خدا رو نمیشنیدند. در نتیجه به خاطر شکست رهبران روحانی، حکومت از مردم دور میشد. اشعیا و میکا هم‌اثر بودند و تشابهات زیادی در های اونها هست. هر دوی اونها بسیار نگران حکومت بودند. اشعیا بر واقعیت تخت خدا تکیه می کرد و اینکه خدا از تخت خودش بر دنیا حکومت میکنه. این تاکیدش اشعیا در سرتاسر کتاب مقدس به چشم میخوره. تجربیات نبوخذنصر نصر رو ملاحظه کنید به نبوکت گفته شده بود که به مدت هفت سال دیوانه خواهد شد تا اینکه متوجه بشه بالاترین حکمران جهان هست که حکومت رو به هر کس که بخواد میده. این حقیقتی بود که خدا میخواست با نصر در میون بذاره اشعیا این حقیقت رو درک میکرد اشعیا میدونست که خدا حکومت رو به هر کس که بخواد میده میکا هم همین دغدغه رو داشت اما میکا بر این حقیقت تاکید داشت که خدا به نمایندگی از خودش حکومت رو به مردم میده اگر خدا حکومتی رو تعیین کرده که کار کنه پس اون مردان باید در مقابل مسئولیت حکومتی که به اونها سپرده شده با خدا رو راست باشن به هر حال اگر اون مسئولین حکومت فاسد باشند، اون موقع تمام نقشه حکومت خدا از هم می باشه. وقتی که دومین رو می میخونید، متوجه باشید که چیزی که او به خاطرش فریاد میزنه این هست. وقتی که رهبران اجتماعی پول زیر میزی میگیرن، مردم دل سرد میشن. وقتی کاهنین به خاطر دستمزد تعلیم میدن و اون چیزی که باید باشن نیستن، مردم از دین بر میگردن. مردم دیدگاه روحانیشون را از دست میدن. و زندگی روحانیون ها ضعیف میشه. همونطور که هوشه هم گفته، کاهنین هر طور باشند مردم هم همونطور خواهند بود. اگر نبی کسی باشه که دلش رو سخت کرده و کلام خدا رو مععزه نمیکنه و به مردم نمیگه که طبق کلام خدا زندگی کنند، اون وقت مردم به لحاظ اخلاقی فاسد میشن و تمام سیستم حکومتی از هم میپاشه. اساس دومین مععزه میکا رهبران حکومتی رو مخاطب قرار میده میکا در مورد حکومتی موعظه میکنه که از طرف خدا تعیین شده. وقتی دومین موعظه میکا رو مطالعه کنید، میتونید یک سیاستمدار بشید. بسیاری از ایمانداران میگن ما به سیاست کاری نداریم. ما از سیاست دوری میکنیم. چنان که گویی قرار نیست هیچ مسیحی نظریاتی در مورد سیاست و حکومت داشته باشه. اگه واقعا موعظه دوم میکا رو درک کنید، میبینید که او شما را به خاطر این طرز توبیخ میکنه. میکا به شما میگه که خدا حکومت رو تعیین کرده و از طریق حکومت کار میکنه. بنا به گفته ی میکا وقتی این سه دسته از رهبران به وظایف خودشون طبق اراده خدا عمل نمیکنن خدا ناراحت میشه. تمامی این ها بر حکومت ما رو آماده میکنه که نبوت مسیحایی میکا رو که در باب پنج آیه دو هست درک کنیم. در حالی که انبیای مانند دانیال دقیقا به ما میگن که مسیحه‌ای متولد خواهد شد، میکا تنها نبی هست که به ما میگه مسیح کجا متولد خواهد شد وقتی میکانه بوت مسیح های بزرگ خودش رو به ما میده ملاحظه کنید که او در مورد حکومت چی گفته و تو ای بیت لحم افراته اگرچه در هزاره های یهودا هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است بنابراین ایشان را تا زمانی که زن حامله بزاید تسلیم خواهد نمود و بقیه برادرانش با بنی اسرائیل باز خواهند گشت و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در کبریای اسم یهوه خدای خیش گله خود را خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساکن خواهند شد زیرا که او الان تا اقصای زمین بزرگ خواهد شد او سلامتی خواهد بود هنگامی که آشور به زمین ما داخل شده و قصرهای ما قدم نهد آنگاه هفت شبان و هشت سرور آدمیان را به مقابل او برپا خواهیم داشت. وقتی هیرودیس شریر از رهبران مذهبی سوال میکنه، آیا آیا گفته گفتند که مسیح یا شاه یهود در کجا به دنیا خواهد آمد؟ به خاطر میکا رهبران مذهبی میتونند بگن او بله او در بیت لحم به دنیا خواهد آمد. اونها میکا با به پنج آیه دو رو نقل می کنن. میکا در مورد ناعتاعتی قوم خدا در مععزه اولش صحبت هایی کرده. میکا به اونها گفت خدا اونها رو دست جمعیت هم می خواهد کرد تا به دنیا نشون بده که ناعتاعتی قوم خودش رو تحمل نخواهد کرد. او در ادامه به خاطر فساد رهبران قوم لحن شدید تری با اونها داره. در دومین مععزهش پیشگویی میکنه که بابلی ها خواهند آمد و اسرائیل رو به اسارت خواهند برد با این حال به قوم اطمینان میده که وقتی تنبیه خدا تموم بشه اونها نجات خواهند یافت. بخش دیگر موعظه دوم او نبوت معروف مسیحایی او هست که به ما میگه که مسیح در بیت لحم به دنیا خواهد آمد و این امید اونها بوده و امید ما هم هست. چون بخشی از این نبوت انجام شده اما بخشی از این نبوت هست که در آینده تحقق خواهد یافت. شنوندگان عزیز، می شما امید داشته باشید. حتی اگر شرایط سخت باشه. شاید خدا حتی شما را هم تنبیه کنه، اما شما را دوست داره و هدفی برای زندگیتون داره. به حضور او بیاید و او به شما آینده و امید حقیقی خواهد داد. عزیزان دوباره می بینیم که اگرچه اغلب انبیا ها پیغام های انضباطی و تنبیهی دارند، اما این پیغام ها های از محبت خدا هستند. محبتی که غیر قابل مقاومت و بلا شرطه. محبت او رو بپذیرین و به خاطر اون شکرش کنین و اون رو با دیگران تقسیم کنین. ما خوشحالیم که شما تصمیم گرفتید در دانشگاهی کوچک کتاب مقدس با ما همراه باشین. تا برنامه بعدی امیدواریم که از محبت روز افسون خداوند لذت ببرین.